رادیو فیلم امروز شاید یکی از برنامه جذاب این روزها رادیو فیلم باشه نه فقط برای روشندلان عزیز حتی کسایی که فیلم اصلی رو دیدن در سینما یا تلویزیون باز هم از شنیدن این فیلم در رادیو به شکل متفاوتی لذت میبرند. بشنوید رادیو فیلم امروز رو با عنوان محیا محیا نویسنده و کارگردان اکبر خاجوی بازیگران شهاب حسینی جاوید الهام حمیدی محیا برزو ارجمند مهران آزیتا حاجیان مادر جاوید مریم بوبانی مادر مهیا نقی صیف جمالی پدر محیا مرزی خوشتراش مرجان، مجید سعیدی کرم، محسا کرامتی شهره، و انوشیروان ارجمند نیرتاهر، آهنگساز بهرام دهقانیار، تهیه کننده اکبر خاجوی فضای تاریک شبیه یه زیرزمین قدیمی که فقط یه پنجره کوچیک اجازه داره نور رو وارد اونجا کنه یه دختر چهارپنج ساله خوشگل با موهای مجهد بلند و مشکی که یه پیرهن چینچینی زرد پوشیده داره عروسکشو حمام میکنه یه تشن مسی پر از آب و عروسکی که موهاش به رنگ پیرهن دختر کچلوه بعد که خوب عروس بدون لباس و شوز پارچه پهن میکنه و اون رو وسط پارچه میذاره و هر کوشه پارچه رو روی ام میندازه اول صورتش بعد پهلوها و آخر سر هم پاهاش. حالا محیا میاد بین عزادارانی که دور قبر تازه متوفایی استادن روبروی جاوید و مهران نیسته بدون توجه به اونه اما جاوید این آفتادش رو برمیداره و مستقیم زوری میزنه به محیا مهیا زیاد نمیمونه فقط فاتحی میخونه و میره آنان <تصفيق> که کیو از موظف هستی رنگ مادرش مادر بخون ببین این مادر موزه اسمش حسین ابراهیمی است مادرای این مادر حسین ابراهیمی خدایا چرا نمیتونم ببینم رسلم چه جوری پیدا کنم مادر جون کاله هاشب بی ما به فساتون چه را جوونی ببین این درختای های سبز و خیابونای تمیز و رد شدنه پی در پی ماشین بهشت زهران بار این وقت تلف میکنی دکتر جان وقت تلف میکنی دکتر میخواست بیا در ختم استادش میامن شما به من همینجا باش خارم همینجا رومانتیک رو جو <تصفيق> <تصفيق> بابا فکرش از سری بیرون کنون با تو رابیان نیست این همه دختر بروسن را که یکی دیگه یکی دیگه این نسخه برای خواهد بنوستن همه یکی بستن عزیزم دکتر شما حریف این پاک باخته نمیشین بی زحمت روشن بفرمایید بریم خدا حفظ آشق درخسته و در آن زمان بوکتو نگاه از بودن یا نبودن مسئله این هست این مازیه آروم خواهد نه این دختره پاک دیوونه ش کردم دیوونه تر عزیزم اینجا سفر تفسیری استفاده میشه چون دیوونه بود تو هم یه جورایی دیوونه ای آشقیت یعنی دیوونه ای. چی شد؟ آشنا میان این دختر خانمه؟ آره خب این که الان دیدیمش دیگه خنگ کور که نبودم فکر کنم ببین قبلا کجا دیدیش دیدیش ولی یادم نیست کجا چیکار میکنی؟ نمی کنی؟ چود آنی و پرسی سوالت خطمه هست بعد کنار جد ویساده دیوانه آره سلام علیکم بفرمیم برسونیم اتون مظاهم نمیشم بفرمیم مظاهم نیستیم تو مسیر هر جا خواستیم که داشتیم بله بفرمیم میگم اگه شما اون بنده خوده تا صبح باید دنبال قبره به سرش میگشت بیزارا خیلی بزرگ شده اینجوری پیش برای فردا مرده و زنده همدیگره توش گم میکنن شما با نظر من محفر نیستیم یعنی نظر مامن و جاوی درسته. اما اگر آدم فرصت کنه زیاد بیاد این طرفا دوستاشنه این مورد و زنده زیاد ببینه بله بیامون آمون چرا میشه میشه یاد دانس بدیم آمونم کلشو بده ای وای آدام سخور سیبیل که جمعی تو دختر که سیبیل نداره اصلا یادم نه تو دختر یادم خانم دکی کرم از بادکنک تا سیگار محیون از دیکه دکی یا بهتر میگم سر کوچهشون از ماشین پیاده میشه کرم که بگینگی غیرتی شده ظلم میزنه به ماشین مهیا. بکن بگیم کجا دیدیمش محرم جدن آره شدیدن آی شبه زن می‌گیریم وقتی می‌توانی فکر کردن به بعضی چیزها خیلی خطرناکه کرم طوری سر کوچه پایی تیل چراق برگاهی نیسته که جاوید و مهران هم قد و قباره و شلوار پلنگی شیش ببینن هم هیکلی میزون ورزشگاری و سیبیلی دست برگاهی آقای نزیب، اونقدر نهتر آقا دکتر مملکتی خو فريد ناي ما به پای زار نخاست بشه بابا مهرم دل کنید فارو فارو بلكونت رو خوب بریم تو ندي من برم خونه مرجان بفهم انتو زادم به در اومدين وقت ني مادي یعنی چیه شي گيدي خوسي كله نميچنه باباش بس به خاطر سلامتی پوز كليتو ميام بود البته اخبار روزانه نه اون با موباييل ميگم هر روز چراي ز شوه بگون نرمادن خونه هم جندار تو حاله تلقوروراي مرجان ندارم ها چيزي نميگم ميگم من چلم ميکنم ور ني نه سلام بر مادر و خواهر گرامم سلام سلام بفرماییم سلام چجا از این طرفا را گم کردی آره اختیار زیاد داریم بابا من که چشپختم ولکن سر از چه میاره میارم ززئه 2008 با قابلیت موازی ها ها منو رس می از دکتر چه خبر بد نشد و نه با نه بابا کسی اصلا حواسش تو اون حال هوا این چیز نیست آیشباب حتما می همون خب حالا به زنده ها رسیدیم مهمون داریم کی منو میگه دیگه سب کن حالا میبینیش خانو خانوما بفرمایی سلام سلام علیکم شهر خانو محالف میکنم شهره دختر خاله همون میرانم چیزه نامزد مرجان دوماده ما خوششانم از دیرنه خیلی باشیم باشیم دختر خاله اگه جلسه محالفه تمام شده براتون چای بیارم بخوریم در شما درد نکنم باشیم چطوری خوب. چه عجب؟ خالینا چطورن کجا؟ خوبم. تنها اومدم. آخه چه خوب. خوب شد که اومدی این خیلی وقت بود که. خوب چه خبر؟ خوب فقط خیلی چیزا شد. خاله‌ها چرا نیومدن؟ کاش میومدن. ساجون برای کنکور اومده تهران. یه مدت میشه ما میمونه. اه؟ چه خوب. ان شاء الله قبول بشی. حتما قبول میشه خلات خیلی رو کمک ادیساب کنه جاوید. من هر کمکی احساسم بر بیاد کوتاهی نمیکنم با یادم همین باشه. حکمی چنین شده جاوید با هرچون مدرش بفهمی نفهمی دستگیرش شد که ماجرا جارا از چه قراره خب <تضحان> <تضحان> <تضحان> <تضحان> فنجون و چای تو دستش خوش شد این <تضحان> مهامی شما هفته برد نمی کنم بلاخرم چایشو نمی خوره یعنی از گلوش بایی نمی دیگه جاوید میخواستم وجه به شهره باید صحبت کنم بگو چرا به شهره توجه نمی کنیم باید جو نمی برای کنکورش کمکش کنم دیگه باید چکار کنم فقط همون یعنی نفهمیدی کنکور این حرفا به اونست باید باز خاطر تو باشد اومده تهران باز خاطر من نه پس باز خاطر من آره دیگه کی گفته خالجون مامانو که میشنسی حرف نمیزنی ولی من میدونم بابت این موضوع خیلی ناراحته. اون درش میخواد تو اگه تصمیم مراجب شهره داری تا وقتی اونجا صرفتو بزنی همین دادشن تو دیگه چرا را این مامانو برا من درمیاری مرجان جون اون نمیخواب قبول کنه من بزرگ شدم ولی تو اینو باور کن من بزرگ شدم ها پس اینو که نیست جدیه خودم باید بگیرم چی بخواستی بارت بگیرم هیچی آوانا اینا؟ آماده ای؟ وارد جلوی ماشین هست. خود را کنه کن چقدر شغل حال داشت است. تو فامیل می مود آماده درست دوستم منم منم دست. خب از این خود دست من. مرا بشو اینکار، بسیار واقفت خود را بیاموزد تو دکتر نجافیا هست خود را خیلی باور در فیلم. بابا من امروز بود آماده باش و بذار منکاره مال اینم. مال جیله چه بود؟ برانگی آماده شروع اینجا. نابخشی نشیم. میدی میدی. ما باید نداشته باشیم. مدرجون کن با اون حالش که دمتونست بیاد گفتم که تا غروب تون نکشی برون مدنیتون این مرجون که ما رو پوش شده جاوید داره حلوایی رو که مادرش بخت سر مزار دکتر نجفی به همه تعارف میکنه چشمش میفته به محیا که کتاب به دست ای کنار درخت بید کتا قامتی دور از بقیه بایستده فاتحهی میخونه و میره رحمت جاوید که درگیر هر با برداشتنه از اون دارست نمیسته بره دنبال محیا همینطور سینی به دست ببینی که محیا کجا در که جاوید کجا داری میری مامان سرش درد میتونه میگرد که فاتحه خوندی برم خونه پس بریم خود حافظیت جاوی همچنان حواسش به محیاست باید هماره خانوادهش که تو ماشین نشستن از کنار مهیار رد میشن که داره آرماروم و پیاده خیابون رو تقیی میکنه چی شد؟ نمیدونم خسته شد بابا باز بنزین تمام شدید نام؟ صبح تا خیلی خیلی زدن یعنی خراب شده؟ چه میدونم اینطور میگید دسته دو به پابا پا باجون استارت نمیخوره. شاید سیم چیزیش خرد شده ها؟ آره اینم میشه. آره. حالا بعد چیکار کنیم؟ من سلام داره واقعا میتونه که جاوی ماشین جام مامان سرش داره میتونه که چیکار کنم؟ فقط خط تلفن نس نا کنم که من درد کنه قرصامو نمیبردم. اه. خب مامانم قرص برد برم من چیکار کنم؟ من به استلاس دکترم مکانیک که نیستم. اصلا شما یه کاری کنید. بوی دردست نمیخونه. اون چی؟ من زنگ, زنگ میزنم مکانیکش بیاد درستش کنه. باشه بایی تا دیر وقت نمونی تو این قبرس خب میخواین یکی از ما دوتا پیشش بمونیم نه ما حتیل میشیم میشی. از چشش معلومه که همه ی بازی بازیو فقط میخواد قد نخوایی تو مزوجه شدیم که چه میکنم دربست شهرک نقرد خدا پرستیم برای ترسیم سعی کنی محفظ باشه پشت سر تاکسی دربستی محیا در ادامه راهش کم کم در اونجا نزدیگ میشه مرکت زیراور کاری ساختن سلام سلام خانم حالا آره شما چیتره حلی منمون چیزی شده؟ بله یه مرتبه از کار افتاده خب اگه قراره که کسی حالش بده چنان خواهد خبر کنی فکر میکنم خودی باشه سیسترشون پیش رفتر از این حرف هست خودشون بدیم فکر کنم بهشون بر بخوره ببخشید من نمیدونه سم باید جزه شم بمونیم درست میشه میرسیم از تا حلی منمون زحمت نگشیم دیرم شده باید برم هر طور که خراب شدال بروی. آیا افتاد؟ نه، اینجا زود کسات کردم. اینجا همه چی داستداست هم داده بود تا این روزم جاوید مهیار را تا خونه من. ماشینم خراب شده بود اشون مسافره من حالا دیگه چکار کنم دیگه والا محبت به اجوار دیگه ندیده بودیم دوباره سلام قدمتان خوب بود ماشین هم درست گفتم به حال چه کاری بود که اما همیشه میانید اینجا به سهر رو از تو؟ توی این مدت فقط شما رو اینجا دیدن توی این مدت؟ منظورتون هم یکی دوباره که منو اینجا دیدی؟ بله شما چی؟ هر روز اینجا؟ من... نه چرا باز هر روز بیان به سهر رو؟ من فقط توی این یکی دوباره اینجا شما رو دیدم بله باید رجی شد ازتون خواهش کنم تو اونجایی که باید برستیم که هیچ سوالی از من نبوزید باشم منطق که باید خیلی من دوستم میگو دو خیلی چهرتون عاشن هست البته راست میگو منم فکر کنم خیلی چهرتون عاشن هست ولی یه هفته فکر کنم نمیدارم با جدارتون 拉着你 راه و خیابون خاکی قدمای سریع و چشم هایی منصره به محیا که وقتی از ماشین پیاده میشه زیر چشم دوروبرش رو نگاه میکنه و متوسواری که از دور هوای ماشین و محیا رو داره جاوید که میخواد از ماشین پیاده شه خوشبختانه فوری منصرف میشه میدونید که چرا گفتن خوشبختانه جاوید جاویدم که به خونه میرسم چه قیافش با محیا فرقی نداره ای همه مهیا است مونده تو ماشینش میبینم داری که کد داستان میخونی تازه خریدیش؟ م... مالا نیست تو ماشین جون مونده مال کیه؟ من مصادفش به نظر میاد دکتر مصادف کشی هم میکنه مهیا است میدونستی؟ نه اینجا نوسته تقدیم به مهیا به خاطر کار خوب امروز تازه خریده داره مره کتابان دارشمانی الو سلام آره چی کارش داری؟ که؟ گوشی، مهرم، با تو کار دارم ای؟ با چه عجب الو سلام چی داری؟ چرا؟ زنگزام باید میکن فردا هفته صبح دیمارستان باشی دکتر یعقوبی عمل داره، رزیدنت و دا عملم تویی آی دکتر تو اینا خیلی خوب واسه من داشته باشی ده. یه دفعه من زنگ میزنی خونه میخوای با ما صحبت کنی خبر اتاق عمل کامل بده جوید با همه اهل خونه رو در داره باز جوید اداهای آدمای خوشحال و درمیه مثلا حالم بد میشه حالا که می که دست باخته و بخاری حالت رو به راه میشه چه بخوریم چه چی بخوریم چه رنگی عجب نقشی دستفره غلطه علمی دوست خدا به فامی. فکرو من سر دفتا داره؟ درد میفته. جان شما نمیای. شما باparin مال میون خاله. میگم چه مهنام جهالی ها. جای ما نه من بایسی. الله حافظ که تو زغالما. بیا فیش دیدنیه. یه دکتر که از اتاق عمل بدش میاد، لکیرش بهتر از این نمیشه. ایزولو، ایزولسه، ایزول شات، ایزولن، آدرالین، آچوپی، ایزولسه، اوکسیژن، ایزول شات، بگو. دکتر همش میگه حتما از پشت اون ماسک و کلاه مخصوصم دید. به قولی اون گانی که پوشیده به تنی زار میزنه. اصلا نمیدونم به دستش با چی کار کنه. همش میگه میاد بخیه بزنه، بیا. اینطوری میشه. که تو سالی پیدا کردم نیم ماریس مونتاجی رویش. خب، خب، خب. خب، استاد. خب، استاد. خب، استاد. خب، استاد. خب، یه جور استاد. خب، دست مهرانم با شتاب پس میزنه. اما هنوز متوجه این چیز نه شده که اگه که فرمه دو سرش رو که بالا می گیره چشماش با چشمای محیه که جلوش بایستاده بوداره بخیه یه مریض و شروع مکانی می افتاد هم یه نیم نگاهی بیشون انتظار بارام با بیش. گفتم شده شده اگه متوجه بشه محیه رو به روش حالش بدتر میشه. جایی تو سالن انتظار منتظر. مدام ساعتش نگاه میکنه آه, آه. آه. بریا مرد سلام سلام بهتری؟ بله مرسی خدا رو شکر حالا زمین شده به نامتون؟ حالا بابای کرسیزن چی شد دکتر شده؟ نگو من از اول ختم بد بود حکایت من اینجا چرا شاید اصلا اشتباهی اینجا من از موردها میترسیم بهشون دست میکنم بسرم حالا بد میشیم والله شكرا لكم. و على واش زحمه كارم افتقد شما خواهش میکنم پیش میاد. به هر حال یکی از ارتفاعی ترس بلندی مغلوبش میکنه. یکی از مرده. به هر حال شما بعد با این مشکلتون کنایه. بله،, بله سعی میکنم شما ا شب شماست توی بیمارستان. یکی دومه. چه دومه؟ تازه شما رو ندیدم. نمی دونم. خیلی عجیبه. خیلی ممنون خواهش میخواه برخش خامتور بد اون روز تو بهش زهرا شما ما رو شناختی رو کردیم من اگر نمیشناختم به تو وقت سوار ماشینه تو نمیشد به حال به من دیرم شده باید لباسم محوظ کنم خدا بس. بازم ممنونم ممنون. جاویدم بای ساده دست بسینه و رفتنشو نگاه میکنه بچه رو که مرتب نمیاد بیماره فقط روزایی که دکتر یعقوبی عمل داره میاد که روش انجام میدون میره. آقای جاویدخان ما که رفیق گرما با اوگلستانیم که سیا نمیشیم. چی شده شما دنبال ایشون مافتادین؟ چیزی جا گذاشته؟ بی جنبه. یه کتاب و یه سی دی تو ماشین جا گذاشته تو چی؟ چیزی جا نذاشتیم. منظور dele تو. جانم. من که میشتسم عمرم اون تو طلای گیر نمیصن. که خاطر نگفتم. دلتو گفته گفته دل الان مجرس الان یه سبر برای حالا خودم به زنی میدنم باشه باشه الان تو هرز <س> کنم خدا من شما حالا هستم به پرش یه اما به جاوید نمیاد که دست فردار باشه. خیلی آره کنم سلام سلام امال خوبی بود؟ بله خیلی ممنون دوست دارم اینجا دو تا امانت پیش من جا بازشتیم کتاب سیدی من تو ماشین شما جا بونده تک میکردم گرمشون کردم خوشحال باشین گرمشون نکرد چون پیش منه الان همراه تو بله اینجا نه البته تو <تس> ماشین منزل تشجیب <تس> بیادیم؟ بله <تس> این کتابو <تس> نخوندیم؟ نه. اتمن فکر کردی این کتاب مذهبی که راجب پدیسی نوشتن نه؟ نه هم فرصت نکردم هم فکر کردم که ممکنه دلتون نخواد هدیه دوست از خیلی پرم من این کتاب خودم به خودم هدیه دادن خودتون به خودت چه جاله من هر وقت یه کاری برای خودم یا دیگران میکنم که خوشحالم میکنه یک کتاب برای خودم هدیه میکرم شما از این کارا نمیکنی؟ واسه سوالا پیش نمیمهده که ك... که کار خوب انجام بدیم؟ <تصفيق> <تصف> <تصفيق> نه نمیدونم ولی پیش نمیمهده فکر کنم بخوام برای خودم هدیه خرمه پس این نصب شما باید یه کتاب خونه بزرگ دو خونتون داشته باشین نه؟ نه اونطوری هم نیست قصه این قدیسی نیست در مورد چیه پس؟ قدیس اسم یکی از داستانه این کتابه. داستانه مردیه که دختر هفت سالش از دست داده بعد از چند سال که میخواسته به وطنش برگرده دست به نبش قبل میزنه که جسد دخترش هم با خودش ببر وقت میبینه که بعد از این همه سال جسد دخترش هنوز شاداب و تازه مونده یقین پیدا میکنه که دخترش قدیسه بوده جسد و رو میذاره توی جبه ویالونو میبره که کشیشا و اصقفا هم تعیید کنن که اون یه قدیس هست فکرشو بکنیم یه جسد توی جعبه ویالونو تمام شد بقیهش چی میشه رو بقیهشو میتونیم کدوتون بخونیم موافقین چند کلم با هم صحبت کنیم از اون وقت الله داریم چی کار میکنیم؟ خب داشتیم گپ نزدیم ولی چند تا کلام، صحبت درست رسلیم راجع به چی؟ راجبه خودمون خودمون؟ خواه اون تو من که حرفی نزادم من فقط یه پیشنهاد کردم اصلا فکرشم نکنیم خواه چرا؟ کیچتا قضا نپاست خب یه دلی مد داشته باشه دیگه پای کس دیگه ای در میونه اگه اینجوری بگی، من فهمم رایت اومدن بعد میگردم اگرم ما خوب زمان بدیم ما که زیاد میذام نگاهم میشتسم شاید پیشنهادم زود ببین شما هر زمان دیگه ای ام این پیشنهادو من جوابم همین بود مهیا خانم هم بگین چرا خواهش میکنم نپرسید پس وساتراپیو به شده حتما مگوی مهیا خیلی تلخی که اینطور عصبانی دلخورش کرده دختر به این آرومین جاویدم بای ساده دست بسینه و رفتنشون نگاه کنه اما به جاوید نمیاد که دست بردار بشه. نگفتم اینها اومد سر کوچه محیا اونجا که دو دفعه پیش پیادش کرده بود از ماشین پیاده میشه و وارد کوچه میشه از جلوی واکسی و دکیه کرم رد میشه و چند قدم اون طرفتر واحی خب کوچه بره خونه محیا کجاست خب آقا اون که نمیدونه بین این همه خونه خونه, خونه محیا کدومه؟ دنبال چیمی دنبال کی بگرده دنبال چی گردی؟ عشقی اما چینجا بستدی؟ بایستادم مگه جرمه تا کجا با سره به نظر جنبالی جای بدی بستادم آره چرا؟ چون جاتین جنیست؟ جنبالی میپرمای این جای من کجاست؟ قبرستون با دیگه بگی تا تا چی؟ تا خودم نفرستادم بری بارو دیگه این طرف هم پیدا نشه آقا الله ها لا چی؟ اخه نردشورم بچه برلود نیفای دیگه تیکی بزرگش گوششه بیچهاری میبه فروش نه ترازو نه طبق گوجه و سبزیش که جاوید لح کرد اگه ادم زیاد زیادی برای جدا کردن، ادم اگه کسی حرفی کرم میشه با اون گردن و هی چه شبت که رک هم زده بیرون اونم از قیل رهت کسی دنبال از افتاده دو نه خدا من مرد به درده فهمتی باحتش محیا و پدرش میرسن جاوید آش و لاشتو جعبه میوه گیر کرده و از شدت ضربات کرم نمیتونه از چش بلند شد. فکر کنم این اولین بار یکی یکی از گل نازدتر بهش گفته سرم. باشه، باشه. <سرم> <سرم> بزرگ رو شناب دهید و با رو با ایان میگرده بابا همکارشه باشم بتونی را بریم بریم بریم بریم دیگه بابا بریم شدو رو کاشتاره جی جلو نمیاد بابا یه محیجه دست جا بیدن بسیدار گردونهجو یوردش خونه یه مردم محروم از خون ریزی تلف نشه شما باده بشنا بود نفهمی کرد اون فکر کرده شما این مزاهم محیا شدید کی هستین آقا؟ پسردائیشه بچه بدی نیست فقط یه خور زیادی غیرتیه شما ببخش مدر جوان جاهله اما اون از دستیم کتر مدر نکنیم جان مدر مادر محیا یه آلم قند رفته تو لیوانه ها و میبره جلو جاوید. جاوید با دو تا چشم کبود و کنار لب پاره شده و پیشونی خونی فقط لبخند نمی دونم چی گما فقط متاسفم که این جفاق بردون افته من که بهتون گفته بودم <تصفيق> <تصفيق> جاوید اومدی بیمارستان بشه مهران از صفتایی تو سروزگیریو خوردی به جدول آقا کرم گندلات محلشون که از قضا هم پسردائیشه هم خاطر خواهش بله همینطوریه که شما برمانیم حالا میخوایی چیکار کنی؟ چیکار کنم تو بگو نظر من میخوایی از خیرش بگذر هر چی بوداره همینجه تعالیش کن ببینم مامون و مرجان چیزی میدونم ظاهرا که هر دوشون بیخبرم مگه اینکه تو براشون خبر ببریم تو که میدونی من جروه مرجان دهنم لق درزم و کمال تعجب تشخیص درست بود هیچ چیزی نیست کُلیم مکس گرفته از دنداشو نگرفتی دکتر جون چیزیم هست آه اشاره میکنه به سرش معلومه که یه چیزیش هست جاوید شب گهیمان نفهمیدم گوش اش به گبسه بره آخر جاوید جاوید فصلیه گه ظهره یه ساغونه بخور بنده داده شوهر پاره میشه. سلام صبح. مامان نگران. مرچان کنچ کاف. سلام. چی شده؟ چیزی نشده. چی شده؟ کاش مامان دار. سلام سلام سلام صبح. سلام. چرا این شکلی شدی؟ میاد دعو کردی دکتر. بالا صبح خوب نیست. جوابی دادم دعو نیست. کس دوست کردی؟ دعو کردم با کی بایی با بایی سر چی؟ سر هیچی و همه چی بخیره چی ترس حرف زدنه من بود گیر داده بود کنم میخواهم گفتم بسم الله حی بره بره راحتی حرکت رو باید میدید الو الو شاید به تو کار بگی الو الو محطم سلام یه لازم یه لازم سلام حال شما خوبه نیخواستم حالتون رو بپرسم ش... نا چکره خوشحال شدم شما این من از کجا از وفتر بیمار کار بدی کرد <laughs> نه نه نه خوشحال خیلی خوشحالم کرد پس حالتون بهتره نگهدار. نگهتر علو سمکن اله بوش کنی میخوام ببینه به تو بازم دنبال دردست هم میگردیم؟ من نه من فقط بخوام با تو حرف بزنم اگه همون سالا همون حرف که جواب منو شنیدید نشنیدید؟ شنیدم شنیدم اما قانه نشدم یه یه جایی قرار بذار بگیرد من سلاحه نمیدونم دیگه هم دیگه رو بگیرد چرا آخری؟ از درسی به منو یه پاش بایستدم فردا صبح محلتون خوبه؟ نه نه تو رو خدا دیگه اونجا نایه بسی یه جایی رو خودت تحین کن بری همید چی شد بازم؟ خیلی خوب فردا ساعت سه بیاین اونجا چرا؟ یا خودت میفرم جاوید مستحصل و عاشق با چشمایی که هم مطمئنه هم التهاب داره از چشم از آشبازخونه زل زدن بهش اونم که نمیخواد به هیچ کدوم از سوالا جواب بده طبیعتا نگاشون نمی نمیکنه درخت های کشیده قطعات منظم قبور به اشت و جاوید منتظر که هنوز نمیدونه باسه چی اینجا باید قرار عاشقانه بذاره سلام سلام بیر کردم نزید بیشتر روزای هفته سفر مسافرهای اینجا هم طولانی میشه مسافرهای اینجا؟ مسافرهای آخرت خب همهشون رحمت هم هلی شما اگه خدایی نکرده تو سفر مسافرهای آخرت گیر کرده بود؟ ای یه جورای آره جورا چون؟ جو؟ به این سر اصل مطلب من زیاد وقت ندارم باید برگردم چی میخواستیم میگی؟ هفته من همون پیشناد قبلیه جواب منم همون جواب قبلیه آخه شما نمیخوانی یه جواب منطقی و قانع کننده بین بگیم اگه پای کس دیگه در میون نیست پس دلیل جواب ردتون چیه خود منم شغل و کار خانواده ایمه اگه اگه شما ها چی اصول مرده شوخی اگه شوخی دارین می‌کنین خیلی شوخی بی‌مزه ایه یعنی توقع داریم من شما رو که اینجوری می‌شستم تو بیمارستان دستا اتاق عمل به معنی دانشجو الان باور کنم چیزی رو که داریم میگین باور نمیکنم. شوخی نمی‌کنم گفتم بیاین اینجا تا بفهمین ما از چه تیرا طیفه ای باور نکردن شما هم چیزی رو عوض نمی کنه. من توی همچین ای به دنیا آمدم چهار پنج سالگی فهمیدم که پدر مادرم با مرده سر کار دارم از دوازده سالگیم کنار دست مادر و خواهرم مشغول کار شدم می با من زندگی کنی؟ خانوادت می پذیرن که یه عروس قصد سال داشته باشند. من نمیتونیم بیرون از خودم رو با کسی بستن برو پیزه بکنیم خیلی عشقاش تا تحمل میکنن که رو صورتش نمیقلتن محیاران میفته درختا و میره جاوید وسط درخت و قبر گیج و سردرگم نمیتونه از جاش جون بخوره حتی نمیتونه رفتن مهیا رو ببینه قصال خونه جاوید دوون دوون به اونجا نزدیک میشونه میبینه محیه وارد قصال خونه میشه واقعا شوخی خونه واقعا اونجا بگره به چی فکر میکنه حق بری که اینقدر سردرگم باشه تازه بدتر اینکه باید جلو خونوادش نقش بازی کنه این گیتار بیچاره چه گناهی کرده که امشب یا باید حمله بشه به سیماش یا باید پرت بشیر برانون بر امشب حتی دیگه گیتارم جواب نمیده سلام سلام رفته بیدی سراغی سراغی کی؟ هم دیگه نیز باش بودیم شما از کچه بردیم از اومدن جاوید کیه؟ بمیشت اسمش خواهر چیه؟ خواهر چیه؟ خواهر خواهر خواهر خواهر خواهر در برش روزیگه هم بسنیم بابا سای زند گفت اما دیگه برمی گرده پروسید جاوید درشتیم خود حالا هوایی رو بز کنیم ریزت هم آمده است همم کامدست چیکار میکنیم؟ چیه چیکار میکنم؟ چیکار میکنیم؟ میره پیشش نه؟ نه بابا آقا سله نداره ما بله خب پس خود بهش سعیم بزن بگو اسمان موسیقی بگو تز دارم از شیراسو اینجا که میمدم همش به خودم فکر میکردم من چقدر حرف برای گفتن به هم بریم یا تو روز آخری که میرفتم چی بهم گفتیم؟ روز آخر که میرفتم آره گفتی که میخوام بابامو راضی کنم بیام تهران زندگی کنم این که من گفتم هیچ چی گفتی منم بابا خوشحال شدم نید جا یادت یادت نید یا نمیخوی تکرارش کنیم بابا فرم فن... یادم نمید ولی هر چی بود خود بابا چیز مهمی می بوده که من کشم به تا اینجا در ساله یادم نمید چه وقت بلنه نمید نمیخواد بخواد خودا بده. از دست مان دلخور نشه شده جمع اگر میبینی حواستان این روزا پرتی به خاطر اینه که بدجوری گفتار منبال کادم ببینم کجا وای سنم که من برای آیندن داشتم چیزی نیست که بهش رسیدم من چیزی دیگه ای بشم بخون درست دکتر باشه دارم میشه ولی این نمیخواستم از اون بود اگر بودم فرصت بدم یا نه میخوام برم فرصت بدم که خودم در زندگیم زندگی امتزم بگیرم خودم انتخاب بودم من بده بودم اینجا اگر بتونم یار خاطر باشم نبار خاطر بلا که آیان دارو کسی نمیدونه اون حرفا برای شهره جواب اون همه فکر و خیالای ریز و درش نمیشه, هلوانده. نمیشه هلوانده. که این همه باش بازرونده برش برش برش. سلام سلام جرم نونوار سازه با دست گل اومده به کجا زنی راه خودتو نونوار کردی از خانم دکتر بفهم که امارت شما بعید نیست رو ما حرف بزنه حالا چرا تاکسی بالا میزاره بالاخره من باید خودم در حد معاوضه شما رو بالا دیگه نه حالا کشیدی چلو آره روزه چه به باخو هرکی دیگه جای تو بودن شوخی رو من کرد یه دروه سالم تو درش نمیذاشتم اما چون توی یه خاطرت وا خیلی عزیزه نمیذارم زان در بخوره من یه کار خوب گیر آوردم چه کاری؟ اصل همیشه خاک بازییه تو فرقشتونی چقدرا زیر خاک میکردی حالا زیر خاک در میرییم با این موقع اششون هم تو بر اطیخات تو در زیر خاکیه کارش خیلی سخته، و پولش خوبه از این همه به این بدی؟ نه. تو این همه سال این همه سال چه ای باید کردی من رو ببینیم خب این وقتا فکر میکنم که از سایه منم رو میترسیم چرا؟ برای این که سایت خیلی روز سرم سهنگی میکنه اگه میتونستم؟ این اگه میشد، اگه سب مرده میذاشت سایه مر سرت کم میکرد این هم به بگم تا زنده سایه کسی دیگه برا بله سرت باشه حالا هم حرف فکری که تو میکرلت فاتحشو بخواییم ما یا عادت کردیم برای چیزی که میخوایم و به شمه برسیم فاتحشو بخواییم کاری این کار این آقایی دکتر بدجوری حوث ماجراجوی به سرش سده هرچی که محیا به شما گفته درست دکتر ما صلاح نمیدونیم با غیر خودمون بست کنیم بکشو از بیرون به خیر و صلاحه که دورو برای اون نگرده ای اینجوری هم برای ما سر نمیشه هم برای خودت شما هم برای دختر همتیکه خودتو پیدا کن محیا به درد شما نمیخوره دکتر ولی اون درست کند آقای تو برکی برای خودش کسی بشه تا آخرمون بشک اون فقط گاهی میاد مادرش کمک میکنه محیا هرچی هم که بشه آخرش معلوم میشه از چه تیره و تباریه خودش هم که غصر نباشه حرفش دنبالش هست دشتر در خیر و مارو سلامان بخیه نرفارو به این چی گفت؟ مثل دیگونه ها تو چشم زاد زد و گفت اگه موردش رو بشم چی؟ محیا رو به هم میدید. محیا شدیدی که سر به بابا چی گفته؟ بله خب اون بخی چی بهش گفتی؟ چی چی باید بهش میگفتم معلوم بود که حسابی قاطی کرده بود من فقط بهش شاید. گفتم این حرفا چی که نزنی آقای دکتر از شما بریده ولی اون دستفردار نبود که نبود آخر سرم گفت من فردا میام که جواب بگیرم حالا من فردا بهش چی بگم محیا این پسر دستفردار نیست از اون از بابا. فردا که اومد. بهش بگید اگر هفت مورده رو شستو کفن کرد قبوله. او اگه راست را این کاری کرد چی؟ وقت خواهی زنش بشی؟ پس جعوبی کرامو کی میده که صبتا قربی نگی پا پشت در خون به میشه مادر نگران نباشید هیچ چه اتفاقی نمیورده این آقای دکتر جرات نگاه کردن به مورده رو نداره چه برسه بخواهی بشروع کفمو دفت اما تو مهنه این شرط رو بشنبه میره پشت سرش هم نگاه این شرط خود محیا گذاشت داشت آقای توبتی آره امون ولی فکر کنم پاسه با آتون بکنه چون میدونست که شما احلا این کارها او یاد کنیستی یعنی دسته با چورفتی تحصیفتر از این حرف هم که با تو نمی شرط رو قبول کنم آره از اینطوری طوری فکر کرد باشیم نه میارم باید دید بوده پذار این نه راست میکفت مخواد خودشو پیدا کنه جاوی دنبار جدی جدی داره فکر میکنه روز و شبش بد جوری به هم بحث شدن پس میگیره به حالام بخش اداری قصال خونه به اشت ما های دنیا دو دست هستن که دائمان جاشون رو با هم عوض میکنن یه دست محک میزنن یه دست محک میکنن این پازی تا آخر دنیا هم ادامه داره حالا اگر تو خودتی میخوایی محک بزنی بهتره بری جایی که دور از دیار خودت باشه اینجوری هم خودت راحت تری هم اطرافیان فرصت سرزنش کردن تو رو پیدا نمیکنن کنن شماست در کجا برم بهت میجه هجی رو باید نشون میدم که سی سال دلم بلنم میخواد اونجا برگردم همونه و جاوید با یه سر پرشور و یه چمدون کوچیک و یه عالم اشتیاق راهی راهی میشه که از هیچ چیش خبر من داره. کاملا با چشمای پسته یعنی <تصفح> <تصفح> مران رو بفهم اون تو کجا داری مرین گفتم که ما واسه تحقیقات و عملی تزم بد داریم یه جای دور هسته. نه. حالا وقتشه داریم. بسم الله. ما امروز که با کیو داریم میریم. من خودم دو تایی با هم میریم. نیا نازش به زنگ زد. شما فقط مواظب خودتون باشی. چاوی. جاده باریک و باریکتر میشه و خاکی‌تر. روستای خشتی در دل کوه. قبرسونی ده. زمین خاکی درندشت و خورشید بی‌دریغ کند. جاوی با یک کیف و کلاه بطریاب. سلام علیکم، سلام علیکم. احسا نشین، و شما خوبه؟ منظور شما خوبه؟, خوبه. میتاهر کجا میتونم پیدا کنم؟ می چهار الان رفته قبرستون. از کون تا رفته؟ از راسه شما رو دادم آها اونجوتونو دارن قایم میکنن وقتی باید یه چیز میسا تو دو تا قول دیگه آشان. سلام علیکم. سلام علیکم. حسنا نوشی. دیر من دینا نوشی شما آقا میطاهری. آقا جوفیدی نه؟ bale. دکترم که هستی. <laughs> شما از کجا میدونی؟ نترس. غیبگو نیستم. آن سویید رفیق قدیمی و خبر اومدارتو به این داد. کارم تمام شید. و جاوید از همینجا شروع میکنه با اون لباسای تراتمیزش میشینه رو خاکی که از کندر قبل روز شده آب میخوره معلومه که گرما بد کلافش کرده جوان بودم که سال آبادی ماست دیگه تو آبادی کسی نبود که مرده بشوره و خوسته مرگ پدرم که پیش اومد مجبور شدم خودم بشورم کم کم یاد بچیگه ها که من اون رویه تمومی با چه وسلاسی میشود دیگه فکر نکردم موردی به نظرم نیومد دراز کشیده با من بشتمش بفرم. بفرم خونه میرتاهر با عیون باز صفا و درپنجرهای چوبیش حیات و بلدناش بفرم آبا جایی اتاق و پشتی ها بود سلام پر خیلی خوش اومدیم ممنونم سفرس خوزن با <تصفح> کار <تصفح> نداریم؟ نه. با کاریم میرزاهرهای میزی کوچیکی کنر اتاق ای داره والیم که اون گوشه هست پشت سر جاوید بفرمایم دسته شما درد نکنیم میترم بودیم هیچی دیگه کارم تمام شده به خاک سپردیمش شم اومد به خوابم خوشحال بود از اینکه من قصدش داریم گفت این کار سواب داره بهم سفارش کرد مسافرهای قریبی که راهی اون دیارن من قصرشون بدم منم ادامه دادم البته شغل اصلی من سنی تراشی و شیشواریه بابا نهار حاضره باشه بابا صفری بیار ای شهره اومده بیمارستان بالاخره اومده محیره آقا روی درسالی تفتراتی شهره در چیکاری میکنی؟ دارم مسائل لحم رجع خب میبینیم ولی چرا؟ مگه میخوای بری؟ من اینجا قبول به نیستم اگه از دست جاوی دل خوری من از دستش دل خورم. حساب این حرفا نیست ما دیگه بزرگ شدیم مگه نه؟ به حال خاجه این شیرازیا من همان روز فرها و که امان دلش ایدا به لب شیری داد حالا یکاییت جاویده دلش جای دیگه است میگه شوهرتو، دایی صد قزاवत می‌کنی. باشه. همین روزا زنگ میزنی شیراز میگه شوهرت حادثه درست بود. اولین صبح جاوید تو خونه میرطاهر. سلام انطاله. صبح بخیر. شو دوست خوب خوبی. علی سلام سلام جلو. سلام وای، سلام سلام, سلام, دار. سلام و حالا مغازه میفته. دیوارا ای پر از تابلوی خوشنیسیش. در امیدی که رسد روزی و در ساوی, ساوی عد گرگوید نداریم و برای گوید بچه حالا دوزایی جاوید میفته این کیه که هم اسم شماست؟ حالت وقتم نداره. <تصفيق> خوب دار اومدی؟ بله یه جورای اینگار سفارشیه <تصفيق> گذاشتمش تو نوبه سنگ قبر میر میرتاهه برای خودش هر وقت زمانش برسه اما اینجا خیلی دیگه هم هستن که زنده و سفارش و سنگشون رو دارم اینجا نگاه کنی حلال زده هستن. قبل محمد سر موقع مثل هر روز داره به سراغ سنگش جاوید انگار اولین بار این حرفا رو میشنبه سلام کبله سلام خسته نباشی سلامت باشی اه... دیگه چیزی نمونه همین روزا تمام میشه اینم مستمع خسته شده بس سر رو هر حرفا میزنی میزه میکرده ایشالله صد ساله دیگه نفری نمی کنی الهی به خودت بگیره خدا حافظ خدا یه میبینی یکی دیگه چنم که زنگی رو تو خونه افتاده مرس باسم آبادی هر وقت میرم عیادتش سراغ سنگش رو بگیم میترسه برسو هرچی بهش میگم بابا اسم توکند شده روی این سنگ به درد کس دیگه نمیپاره باورش نمیشه که نمیشه اینا فقط با فکر کردن به مرگشون زندگی مپار تاربش فکر نکرده برا ببین اگه ما آدم ها باور میکردیم که با مردن یه نفس بیشتر فاصله نداریم دنیا گلستون میشه حیف که باور نمی مردنی هم تو کار هست چرا؟ همه می دونن یه روزی می میره؟ بله می دونن ولی یادشون نیست. دونن شما در بکنیم بین دونستن باور کردن کلی راه. از یه گورکنه می پرسن تو که یه عمر کارت اینه عجایب بیام دیدی؟ میگه عجیب تر از این ندیدم که هشتاد سال دارم گور میکنم اما هنوز باورم نمیشه که یه روزی خودم من میمیرم آخه نمیشه که آدم اگه بخواد همش به فکر مرگ و مردن باشه پس که به امید و آرزواش مرسه چه مولا میگه اون طور زندگی کن انگار 100 ساله دیگه زنده ای اما طوری با مردم ما شرط بکنه به فکر آقا و بری باش که انگار فردا می مییم سلام میه دیشب منشبون تموم کردنش خار خوونه خیلی خوب شما بزنین ما از سایر بزران جناب روید بسم الله این اولیش آقا من مکره این رو کن یه دفعه نفسش بند میاد چایی تو گلوش گیر میکنه این کار تو هلان فکر نمیکرد ماجرا اینقدر جدی باشه یه نفس عمیق میکشه و خودش رو جمع جمع یه اتاق وسط یه دشت خاکی و همچین کمی سوز با چند تا درخت میرتاهر که داخل میشه جاوید کنار در وای اول یه قدم میره جلو و یه قدم بر میگرده این پا اون پا میکنه دستش جلوی دهن و بینیش میگیره و بالاخره وارد میشه یه حوز یه تخت روش پنجره باز به نور و درخت میرتاهر تا میرسه میره سراغ چکمای پلاستیکی جاوید میره سراغ پنج. دستش رو پشت کمنش گرفته مستصله که مرتاهر چکمه ها رو میده دستش پیشبنده پلاستیکی و دست کشو. خیلی جاوید سعی میکنه به خودش رو میشه اون لحظه خاص قدم به قدم داره نزدیک میشه جاوید نفس روی از انجاری میکشه مرتاهر میفهمه که چه حالی داره و بالاخره رسید اون لحظه که باید نرسه و حالا دیافی جاوید دیدنیه خب حق داره اولیش بوده رفته تو آوانبار نشسته تا حالش کم جا چی شد آقای دکتر حالتون خوب نیست سلام سلام از خوبه چرا من خوبم خوبم تو خونه بله. در کلونه بودی بله چطوری ها هوا اینجا سنگینه نفس دادن نمیگیره توی کاپور میخوام منم آب بیارم نه راستش شما لازم نداره عادتن خوب میشه آقای دکتر شما رو مجبور کردم بیاین اینجا قصدادی کنیم نه کسی مجبورم نکرد دلم خواست این کار رو گفت بکر تازه آها قصدادی میکنیم که از مرده ها نترسیم حتما میدونید خیلی از اینایی که تو این قبرستون و تو قبرستین دیگه خوابیدن با نسخه شما دکتران راهی اون دنیا شدن نه همه شما آقای دشتر چیزه نمیخوای؟ کاری نه محمد جم. به امور بگید. الان میان. چش. خب البته. عشق هر جایی خودش رو به یه شکلی نشون میده. انگار محمد هم هر جا که دختر میرسای قدم میذاره به بهمونهی حاضر میشه. محیه و مهران از در بخش بیمارستان میان بیرشون بود. بود. محیه رد میشه. مامان مرجان تو حیط وایستدن. مهم ما ماندی انجا فقط فقط قیافه این خانم رو برنداز کنیم بابا جونم به شما گفتم میخوام بفهمم خانواده اش چجوریان اصل نسبش که ای بابا ای ماما این کاری نداره میو تحریقات نمی کنیم که غری که دل بچیمارو جادو کرده کیه باباشی کار است سواد مبال داره یا بی سواد نه باباش کاتش <تصفح> <تصفح> با <کیون> داره کیه قصه‌خونی بهش زهرا مثل خمیشه شلوغه اون وقتی که میگفتم نزن این دختر هوایی بشه این روزو میخوندن کسی نتونه جلو دارش بشه من نفهم دست خوندن دانش گفتم چه دردون میخوره وقتی قرار بشینه تو خونه بچه بزرگ کنه کلام محیا با هر عروسی کنه فرقی نمیکنه قرار نیست بشینی تو خونه و کنه بچه بشینه دانش خونده زحمت کشیده که برای خودش کسی بشه نباید که پا پای من بذاره به همین دیگه اینقدی لیبل لالاش گذاشتین اینقد پرواش دادی، تو همین رفته اومده بود که سر کله این پسره پیدا شد مو دامق ما شد نه؟ حالا تو این حرکت تو چرا پایونه کشیدی بسد اصلا اون کی هست با ما چیکار داره نداره چطور رفتو تو مرد و مال محیا خیر سرش هم صبح که فامیلش اومدیدن تو محل واسه تحقیقات تو چالش می‌کوبیدن به تا امین امین رفته سر بالکن مانی محیا و مادرش لباس کار پوشیدن و مشغولن الو بفهمید. خوشگله خانم. این قضیه چواسید بولاستا اشترین فاصلی نمیخونید؟ مادر توش نیست. چه ما کی هستیم؟ قانون نداری؟ عادی چه میگم یادداشت کنم فردا برو اونجا ببین چی میبینی. آه. مادر جاوید لباس سیاه پوشیده و همراه شاهدون عزا پشت شیشه محیا رو میبینه. باورش نمیشه. هزار جو فکر و خیال با هم از سرش میگذره. داوید این دختر اینجا حالا چرا رفته این دختر رو بین این همه وصله جور زن زدود میخواست دست همون مندازه برید برید چی شد ماما ماما که تو مغازه نشسته بوهد زده به حرفای میرتاهر گوش میده سلام سلام این نه رو اندازه کن بندستی قاب خوب خیلی قدیمیه قاب خودش کجاست خود. قابشو موریانه خورده پوسیده بودم داختمش دور خیلی قشنگ بود حیفم مدای نشم بندازم دود میدونیم ایتا ایلیر آینه چند سالشه؟ چند سالشه؟ سد و هفت داد و پنج چه آدم های کدشونو تین آینه نزا کردن رفتن عمر <تصفح> آینه ها از ما آدم ها بیشتره اگر نشکنن <مشن> اگر بشکنن و تیک تیکی هم که بازم آینه تو هر ذرش میتونی خودتو ببینی قاب آینه مثل تن آدمی میپوسه موروی نمیگوره میسوزه هست به این میره اما آینه مثل روح آدمی اگر ساعتی میشه بازم آینه است پنشنبه حاضره بیا به دست دسته خدا به سلامت اونایی که تو این دور زمان مجنون میشن یا یه شبه ماهاشون میگیزه یا مثل جنگلی ها میشن حالا خارج از شوقی شما واقعا نمیدونین این جاوید حتما به شما گفته نه به من گفتم فقط یه رویی از خودم کم کنم که تو قصه ها بنمیسه نمیتونه برافشی میکنم ده این, این همه در سر فقط این کرم کم بود که این بار تو حیات بیمارستان پیدا شد یارو راست دیگه منم بهش چی گفتی شما؟ و راست به فکرت کیه چی؟ گفته گفت یهو افتاد دو دل دخترم من از احساس شو بزنم چه غلطی سرش آوردم ها؟ دیگه نبینم باشم جلوی بشم اینو به رفیقتم بگو. حالا که نیستش وقتی اومد اگه جولت کردی به خودش بگو. دیگه هم چه گندخاک تکو هم خودت بده هم دخترم مت خوبیت نذار. دیگه بیمارستان خدافس. کابل جان نفس امین. آها، نفس امین. ما خدا رو شکر، پیش خیلی بهتر شد. خیلی خوبه ما الحمدلله. کپسولات هم ساوم نشده. نخیر. آنتی بیوتیک سر ساعت بعد بخور، اگه فایده‌ای نده. سیگارم دیگه نمیکک. حطی. به سلامتی. حال جاوید زیر درخت خیلی پیر نشسته به نوشتن امروز سه با میشم تموشم دیگه از ترس و دلزدگی خبری نیست گاهی باور نمی کن. باقعا منم که کنار یه مرد نفس میکشم قسلش میدم کفن پوشش میکنم میدونم کسی جز خودم باور نمیکنه وای میرتاهر با یک کاسه سفالی پر از انار دون شده سلام پیشین با پیشین راحت دست شما درد نکنه امو جم سرش رو درد نکنه داشتیم یعنی می نوشتی؟ نه خاطرات روزانم می بعدا یادم نه کار خوبی نکنی ما که خاطراتمانو تو قفس می داشتی قفس؟ آره تو این قفسو تو این قفس دست هیچ کس بهش نمی رسه تا از حال و روزگاری که به ما گذشته با بردش بگذرم تو این چند روزه خسته و کلافه نشدی که نه دیشب شب که اومده بودن دخترم میگفتن اعالی محل تو حیرت موندن که چطور شده تو از شرق پاشدی اومدی اینجا قصد سلیم احلا آبادی که حق دارن امو خدا منم حیرونه اصلا چی شد که سر از اینجا داره بودم و دارم کاری میکنم که اصلا تصورش هم نمیگرد به اونم کار کار هم نشبه که گفتی فقط اونه که میتونه با آدم از این بازی ها بکنه میگه گفتم که نک شودم زان تا من بودم گفتم منش فرمودم تا با تو پراری کنم آخه چیه این که <تصفيق> میتونه زندگی آدمو زیرو کرد. اونو که میزرن سر راه دل برای بعضی ها یه نشون یه علامته یه دعوت پلمونیه که آدمو بکشونه به بادی خودش حالا کی بتونه این راهو خوبتر کنه. میره به وادی های بالتر اون مخشات نتونه بفهمه معنی عشق چیه اول به بانگ نار و نی آرد به دل پیغام بی به یک ایمان نی با من وفادار کنه دشتی زرد و وسی و گندم تسلیم با بوس کرم داره آتیش پهون می‌کنه. فر قلی اونجا بود. هست درد نکنه آقا کرم. بزن آقا. آه. از این جوجه دکتر چه خبر؟ خودم جوجه دکتر. آها یادم اومد. چی کارش داری؟ یه با یه چند وقتی نمی‌بینم افتاده بشه. دلوپس شدم گفتم نکنه عاشقی دیوونه‌اش کرده زده به کور یابوم. عاشقی. خودم عاشقی ام. اون میشه گذاشم کولش من که خبر نداری. نه. <تصفح از فقط> تیره کرده بود که محیا رو بگیره محیا بدان که از شرش خلاص بشیم. بهش پیغم داد که اگه بیره هفت مغدره بشوره اون وقت یه فکر میکنید دکترم وقتی شرد رو شنید رفتی که پوشترش هم میگاه نکرد ایوان ایوان بایی ساوی طرف سیاه کرده سیاه سیاه محیا کجاست؟ چرا پایین میان؟ داره نماز میخونه یه دفعه فکر میزنه به سر کردم ب حالا اگه با او ضبط چش رو افتاد دفت فرماوشین خانم خاان ها چی؟ به معش میگهگه نه؟ بخره شما بایدتون نمیید که شااد ماده دکتر داشته باشین دیگه در این چه حرف یه کرم جون اونااهش از هست نداده که یه کار را فته برین اون ما ماده, ماده شدی حالا چهیکی چه, چه هفت مورد رو گور روور کنه همون نقل این حرفانی حالا اگه معیان شخص که طرفه در خونه بیاد تو؟ که بله بگیره بعد بگم پور خونده تا وقتی من زندم نمیذارم کسی دستش مریه برسه کرم کرم گوش کن بایستا کرم ای خدا اینه ایچه بلایی بود سر راهی این دختر را. اگه تو کی میتونه تا اتاقش خودش رو زنده میکنه آه. به اون مهرام بگو این قصد سوسه نیاد سلام کی میگه اینجا تای دنیاست это вообще один جای خوبیه کارم تموم شد برمیگردم نگران نباش محمد جلوی دیوان رای ساده که این جمله رو روش نمیشتند چرا سخت دوستش داشته باشی نتونی بگی چه نکرده خوب بابا یه دوستش داری نمیتونی بگی م. نه خوب نیست تو گفتی هیچکس نمیدونه آقا چه گفتم آجا دیگه حتی محیات تو اتاق خودش تو خواب خودش هم آرامش نداره مطمئنان داشته فکر میکرده که سرش رو تاج تختش منده با خوابش برده. مدام حرفی کرد سرش سرشون پیچه و سرشون میپره قلبش تونتون میزنی میری تو ایفان. مادر به این شب ببین محیاجون خوهرت دلشت گذار سیره پاش و بردونی شد تو بیا و این کار نکن آره بابا اگه دوستش داری ببین میتونید با هم از این ممنکت برید که دست کرم بهتون نرسه برید من مادرتم بلاخره یه فکری به حال خود میکنیم تو نگرامو نباشی آره مادر تو اگه بریم ما برمیگردیم میریم بلایت خودمون کرم هم بالاخره سر عقل نیاد و یه سر سامون میگیره. تو باید به فکر خودت باشی ما هم هر باشیم به خوشی شما خوشیم آره بابا این چه حرفی میزنید مادر جم ما مثل همیشه باید پیش هم ببونیم کرم قول داده عوض بشه منم هم کمکش میکنه دیگه چی میخواییم بهتر از این من فکر کردم شما نگران نباشیم باشه دیگه راحت شدم از امشد میتونم راحت بخوابم با این هر تو نگرانی تو چشمان جاوید ما اوچونی زنه بزرگش کردم رکتو انگار همین دیروز بود که از کنار اون خدا بیا جداش کردن و گذاشتن تو بغلمو و به هم گفتن از حالا به بعد تو هم براش پدری هم مادر مادرش سر زارفت و ما رو تنها گذاشت رهنها روز به روز بزرگ و بزرگ در میشد و من فراموش میکردم که درم پیر میشم یه شب که خیلی مریض بودم آمد به خوابم. نگران بود بهش گفتم نه ترس تا رنا رو سر و سامون ندادم نمیان پیشه خندید رفت امشب وقتی داشتم رعنا رو بدرقی میکردم میونی جمعیت دیدمش خوشبارم بهش گفتم دیدی به قولم دفاع کردم حالا میتونم بیان پیشت خندید و راه افتاد دنبال رهنم مثل که سر تو درد آوردم دکتر خیلی خستت کردم آره راستی دکتر از اون هفته که نید کرده بودی چند تشموندید فقط یکی فقط یکی <تصفيق> چه زود دارن هفته نشن شب تو خیلی شب خیلی ایرتاهر با اون یواسای سفیدش و عویسی دخترش آروم آروم از پله ها بالا میره تا بره تو اتاقشو بخوابه پرده اتاق خودشو به دست باز خردبن پرنده ها دل جاوید یه ریخت. صبح روز بعد اون اتفاق بالاخره افتاد. جاوید یکی از کسایی که زیر تابوت میر گرفته و با جمعیت تا همون اتاق کوچیک میبره. حالا جاوید تنها تنهاست. نه میر هست. خبرمه چه خبر خبری نیستمه بابا تنوز بو بله. ولی که تو دو ماهی دیگه اومدم بگم اگه میدونی دلش با تو نیست اصرار نکن ولش کن برای تو قهد دختر نیستمه شما خواهی بهتر میدونیم به محیه باید من با دکتره دیگه فرق میکنه من که مادرم نهیدم شما همش میگفتیم محیه شکل مادرته نمیگفتیم؟ چرا میگفتیم؟ ولی بلیاخد... آخه همه یه اتیه باید بچه بودیم با بوش خواب زد سرم و شکور کنم؟ هنوز جاش مونده خیلی دردم گرفت خیلی هم خونو من تنبالش گردم بگیرم بزنمش مادرم دلم نایمه. اون موقع بود فهمیدن دوستش دارم بیچار مادر که بازم تیرش نبورید ولی کرم همچنان بلکن نیست چرا بعد از این علیکی سلام علا سلام باز چی شده رفیقت کجاست نمیدونم. رفته سفر الار گونی چه رفته از غورو همهش بکن مثل سایه دنبالته هر جا بیاره امولو نمیده کارت به اتاق عمل بکشه اگه جونش دوست داره فکر مویه کندش بپرونه اون توی شرایطی بزرگ شده و زندگی کرده که معنی دوست داشتن اینجوری فهمیده منم تاله فرصت نکردم نگاهش رو بس کنم حالا از این به بعد شاید فرصت بیشتری براش داشته باشه بخشید این وسط جاوید چی میشه زنده میمونه. این از همه چیز تو دنیا برای من با عرضشتر مثل که دیگه حرفی باقی نمونه همه تصمیم هاشونو گرفتن یعنی شما میخواین اینجوری کرم و مهار کنیم چاره دیگه ای ندارم اگر جلش بایی نستم هر طوری شده زهرشو به جاوید میگه منم نمیخوام کنم این اتا اما کسی از تصمیم جاوید خبر نداره. چه افراز احالی برای بدرقه جاوید اومدن یالا خیلی خوش آمدیم زحمت کشید خیلی خانم خیلی به زحمت خواهش میکنم چه زحمتی اینشان خوشبخ باشه این کتاب بابام کنار گذاشته بود برای شما دوستاش هر وقت که بر با خودتون ببینیدش بالاخره این روزا هم تمام شد خیلی بمینیم محمد سلام آقا سلام شالو کنه که ندید کجا؟ میخوام آقا. <متصفيق> از اینجا برم آقا کجور هر هنجای دوی از اینجا خیلی سخته وقتی دوستش داشته <متصفيق> ها؟ برا آقا باید نیگفتی؟ نشد آقا اسمت نبود مرتاهم نیست داد بود اسمت نبود مگ شام می یک شgas گزنی توستاری مادر من مادر من چند بار بگم برای تزم نیاز به تحقیات عملی داشتم جاوید جان من احمقم مورا جو بابا احمق کردی من نفهمیدم به خاطر اون دختره رفتی توی دل, رفتی توی دل اون چیکار چی کار آخه چه کردم؟ چه کردی؟ جاوید جواب مردم مردمو چی بدم؟ بگم من بابا شیع اوم زهرت که بچه بشه پزشک های رفته رو یک هر سال؟ آخه کی گفته من میخوام قصال بشم توی اون ده چه غلطی میکردی؟ که همون بشون شده بودی؟ ای من دیگه بزرگ شدم تبا بزن میکردم یه کسی هم اونجا بود که تو کار قصالی بهش کمک میکردم ایوی داره؟ به بابا همینه میگی؟ آره چرا که نه؟ گناه نه نگه. سوال داشتن بعد جواب میگرفتن یه چیزایی بعد حالی میشد حالی شد؟ فراش میکنش. آره مادر من چی؟ اینکه چیام؟ ها؟ چیام؟ چیکارم همو کنه؟ هم؟ چی میخوام؟ آدم ها هر بالایی داره خودش نمیده. این جون. کین اعتماد کن. ايه اعتماد کن. قربان. اعتماد کن. حامله ای؟ چون سبقی بالا موقع بروزه است جا بیست من نمیخواستم چیزی بگم. من شدم با اونو پس بود. بگرم اتفاقا این دفعه رو دمت گرم با راحت راحتم تردیم مونده بودم چجوری بهشون بگم. حالا کجا میری؟ تو دیگه چرا این سوالو میپرسی؟ میرم رو پیدا کنم تو این روزه هر جورو میگهردم نیست دیگه دنبالش دارم چرا؟ چرا دنبالش ندم بدو دیگه میگم جاوید من باید با خودش حرف بزنم که اصلا. چی بشه کرم قسم خورده اگه تو رو با یا ببینه خلاصت میکنه میشناسیش که دیوونه هست من دیوونه ترم مهران میشناسیم که من باید رو ببینم خودم از زبونش بشنوم چه تصمیم میگرفته میخوای کمک کنی پیداشون بگوید ببینمش جاوید بیا بگذر از چیم از چی مهران یه بار خودم انتخاب دارم باش تو برو تو ببینم چیکار. باشه ولی برام پیدایش بود گولم نزد میان جاوید جاوید گوش و مدی روز سالا دنبالش گشتم که ببینش ولی تنها نه منم باهات میام نه تو گوش و مهرانش تو نمیخواد بیاید اینما مهیارو تنها ببینم با کرامم هیچ کاری ندارم یه نیشی الو جاوید الو و باز جاده و جاوید خدا بخیر بذارم ماشین چون اینجا شده یه عاشق یه نینکت یه شاخه کل سور یه عالم انتظار دل باز. بلاخره من عشقم که اومد سلام سلام خوش اما اما انگل نمیگیره کجایی؟ خیلی دون سخت کردم کجا میدیم؟ هر که میشد دورتر از باشم و با چشایی که به نور عشق درخشان پر پرنورم دنیان قد از من نه به خاطر خودت بود که میخواستم منو رو حالا چی؟ الان الانم به اصرار خودتو که اومدم اونجا ولی نایمارم به جواب مصر. پس یه شرط دیگه داره حالا خوب باشه قبوله میخوای چیکار کنم مثل فرهاد بیافتم به جون کوه بیست و تونو دبکن اجده ها بکشم از چشمه آب و حیال آب بیارم میتونی چرا که نه؟ تو بخوایی باید صحیح قرآن بکنم دیگه نه همین که شرط من شوخی منو چوخی من جلدی گرفتی برام یک دنیا ارزش کنم محیا یه میدونم اگه تو سر اون قرار نمیرفتی یکی نسم انقدر خودمو باور پرمدن میران یه چیزی که برق از کلم پری، تو تصمیم گرفتی که با, با کرم آره اما اینگاه حادث کشته به آخه گفتم ان اتفاقی که آه... از وقتی که آه... جاوید داره خودشو دیگه که مهیار ببینه میکشمه من گفتم این کتاب چیکاریشه والا کنار رو میکشم مهیار یه بینی چیزی شاقوی کرم و پخمی پرخونه جاوید آه... کرم مهیار هم نفس میکنه سرش به تنی درختی میخوره واسو اون اونطرف جاوید داره به خودش میپیچه اونم بالاخره از حال میره هر آه... دو غم ای انگار قرار همه قصه... قصه های عاشقونه نه با گل سرخ که با سرخی خون تکلیفشون روشن بشه تو تشریه جنازه جاوید همه هستن میرطاهر مهران محمد کرم پدر و مادر مهیا، مادر و خواهر جاوید عکس خندون جاوید جلوی تابوته مهیا خیلی نفر یکی از جمع جدا میشه و با صورتی شعر از لبخند زل میزنه تو چشای جاوید که وایساده منتظرش جاوید را میافته همراه جمعیت میره اما محیا سرشش وایستاده و همراهیش نمیکنه جاوید هی میره و برمیگرده اما محیا نمیاد جاوید میزنه به دل دشته زرد اما یه گل سرخ و مهیا و جاوید که رو تخت بیمارستان هنوز چشاش باز نکنیم. تو عاشق می گفتم رو بودم گوهر مقصود. ندانستم که این دریا چه موج خون دارد. و اینم یکی دیگه از فیلم های امیدوارم که از این فیلم هم خوشتون اومده باشه و اما عواملی که در این برنامه همراه ما و شما بودند صدا بردار علی حاجی نورزی و تهیه کننده فرشاد آذر و نویسنده و راوی این فیلم بنده ملیه شبانیان در خدمت شما بودن تا فیلم دیگه و روز و روزگاری دیگه خدا نگر.